با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولان و مجریان محترم تلویزیون رنگین کمان بخش دهم برنامه کسوی رو آغاز میکنم در بخش قبلی تا اینجا رسیدیم در کنار کسوی که رئیس ادلیه زنجان شد آنگاه در زنجان با مشکلاتی فرابان شد گردن و دماغ را به خاک مالید و یک سال تمام در آنجا بود اول دیماه 1301 رفت تا اول دیماه دیغن 1302 خب ادامه میگیم در این میان رضاخان به قدرت رسید هزار و و دو ارز کردم اول دیگه ماه هزار و و دو آبان رزا شاه رزا خان تا زمانی که شاه نشده خان میگیم با پوزش، رزا خان در ششم آبان هزار و دو به دستور احمد شاه رزا خان معرفی شد بسا... نخست وضیح شد مجلس تختیر بود در اون تاریخ ششم آبان 1602 یادمون باش احمد شاه میخواست بره اروپا همیشه اون علاقه بود که بره در سیر و سیاحت خودش از مسائل وطن غافل بود علاقه بر این از قدرت رضاخان در هراس بود. رضاخان خان روز به روز پله های قدرت رو میرفت بالا فرمانده کل قبا ارز کنم سالار همه چی تمام قدرت در اختیارشه. احمد شاه و قدرت مقابله با اون رو نداشت هرچند که زید حسن مدرس ملای معروف تهران که نماینده شد و متاسفانه شیخ خزال حاکم خودسر عربستان اون روز خوزستان را عربستان میگفتند عربستان همه اینها به دنبال احمد شاه بودند مدرس یک هدفی داشت شیخ یک هدف دیگه داشت مدرس از قدرت رزا در حراس بود و به راستی میخواست که همین سلسله قاجاری برپا باشه تا دیکتاتوری در مملکت پیاده نشه ولی شیخ غزال چون نگران بود که رزا اگر به قدرت برسه زندگیش تباه خواهد شد به همین دلیل از همو اول میخواست احمد شاه در ایران باقی بمونه و قدرت همین شیخ خزال رو هم در کنارش باشه تا بتونه از اختی رزاخان در یا در حال شیخ خزال سعی میکرد به نحوی خواهیم دید در همین برنامه در آیندم خواهیم دید میخواست به نحوی رزاخان رو از قدرت به سقود بکشانه بگذنیم شیشمه آبان ماه 1602 احمد شاه رزاخان رو به انوان صدر نخست وزیر اتخاب کرد. ملی بود. مگردم باید معرفی میکرد به دوازدهمه آبان از ایران رفت بیرون احمد شاه. رفت دوباره ارز کردم. سیر و سیاحتش گردشهاش در بواد بولون در خیابان پاریس خب از بخت بد شاه در همین اوان در همین فاصله ششم عوام تا دوازدهم هم فکر میکنم شیشم یا هفتم یا هشتم بود یا روزی بود که هممت شاه از ایران رفت دوازدهم آبان اگر حافظم یاری بکنه در همسایی کشور ایران مملکت عثمانی آتاترک نامی قدرت رو در دست گرفت خلیفه رو از قدرت به کنار زد و خود شد رئیس جمهور خب در نظر میگیریم که مجلس آتی رضاخان نخوس وزیر شاه غایب و در اون کنار یک دیکتاتور دیگری نخ خودش رو رئیس جمهور اعلام کرده بنابراین خارج از برنامه واسطین مورد صحبت کردن ولی این وسوسه بزرگی بود تا رضاخان برنامه جمهوری خواهی رو در مملکت پیاده بکنه همون دو ماه بعد مسئله جمهوری خواهی پیشون رو کاری ندارم. رزاخان در این مدت دو سال سبم اسفند 1299 کودتا کرده رزاخان امروز 6 آبان 1302 دو ساله در این دو سال علاوه برای قدرت رو بالا می رفت اصلاحات عمیقی را هم در تاریخ مملکت ما، در سطح مملکت ما انجام می‌داد. اصلاحات بزرگی کرد و بعد از اون هم اصلاحاتش بیشتر شد. مرحله اول مسئله امنیت مملکت بود. خارج از بحث ماست باست دکرار کنم در آزربایجان، در, خوزست در خوزستان که بعدن شد در مازندران، در گیلان در خراسان در سیستان در بلوچستان در کردستان دانه دانه گردن کلفتان رو سری جاشت چسته بود و به مملکت یک وحدانیت داده بود مونده بود عربستان که تا اون روز عربستان میگفتن حالا خواهیم گفت چرا رزاخان به فکر اون بود روز در کسوی که در زنجان بود نامهی به دستش رسید از وزارت عدیه به این شهر خودش نامه رو نوشته و من از روش میخونم در این نامه این نامه از طرف معاون وزارت عدیه برای کسوی رسیده بود در این نامه نوشته شده بود چون دولت حاضره چشم خود را فقط به مساده حقیقی ملت دوخته وحتل امکان مسمم است که در عوض کاغذبازی اصلاحات مهمه اساسی بنماید وزارت عدلیه هم در نظر دارد که در عربستان همون خوزستانه که از نقطه نظر سیاسی موقعیت مهمی دارد و محکمه آن باید از اشخاص وطن پرست ممیز و با تقوا حتما تشکیل شود. و چون اینجانب به جناب عالی دارای حسن نظر هستم و مطمئن هستم که وظیفه وطن پرستی شما را به خیلی از متاعب تشویق می‌کند این است که به طور خصوصی از شما خواهش میکنم این محل را اختیار کنید یعنی وزارت و عدلیه، اداره ادیگاه خوزستان را، عربستان را. تفاوت حقوقی هم به شما داده میشود خواهش می خیلی زود جواب بدهید که تکلیف معلوم شود بله. کسبی در نظر گرفت که برگرده بره مرکز تهران و در آنجا شروطی داشت در مورد معموریت بعدی شرط هاش در میان بذاره با عدیه و بعد تصمیم گرفت که بره اگر قبول شد شرط هاش بره عربستان خدمت قبل از اینکه مسئله ماموریت کسببی رو ادامه بدم چون در بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردم. که ما در کنار کستوی تاریخ مملکتمون را هم بررسی می کنیم که مربوط به کارهای کسبی می شود این اکتفا می کنیم فرصت زیادی نداریم به این دلیل من برای خوزستان یک تاریخی مختصری تهیه کردم که قبل از پرداختن به نعمولیت کستوی بشناسیم که این منطقه کجا بود چی بود و چرا ما به اون عربستان می از نظر جغرافیایی برای این جوونهایی میدم که ممکن هنوز در خاطرشون نمیشه محدود میشه. اما عربستان اون روزی میگم تا زمان که خوزستان شد از شمال به شهرهای خور رماباد، و گلپایگان از خاور به شهر, به شهر کرد و بهبهان و از جنوب به خلیج فارس و از باختر به کشور اراخت وضع تاریخی آن هم من نوشتم اینجا جلیده خوزستان در ازمنه قدیم به سوزیان مشهور بود آن منطقه دهلیز کشورهای خاورزمین زمین به شمار می رفتی یعنی از اونجا حرکت می به کشورهای متفاوت از جانبه از سوی خوزستان حضورترین لطمه به عمران این منطقه تاریخ نوشته به وسیله اعراب وارد شده است بر اسناد قدیمی خوزستان در قسمت غربی ساترپی پرس قرار دارد و نام سابق آن سوزیانا بوده و مطابق کتیبه داریوش اووجه و یا خووج نامیده می اسم او در دائرت المعارف فارسی خوزستان به معنای سرزمین خوزیها <تصفح> یا خوزیها آمده است شهر اهواز نیست از این واژه نامگرفته. همونطور که باز هم اشاره کرده بودم حضورتون قبل از اینکه مطلب را ادامه بدم به منابعی که من به اونها اشاره کردم حضور عزیزان بیننده معرفی میکنم تا اگر علاقمند شدن مطالعات خودشون رو در این بار ادامه بدن به این منابع مراجعه کنن البته منابع فراوانه من به اون منابعی که من اشاره کردم در اینجا حضورتون نرز میکنم. یکی از این منابع کتابی است به نام تاریخ 500 ساله خوزستان. این کتاب رو خود روانشاد شاد ک نوشته. کتابی است منحثر به فر تقریبا. کتابی است که در مدت 17 ده ماهی در خوزستان معمول فیش های این کتاب رو تهیه کرده بررسی کرده منابعش رو تهیه کرده تا برگشته چون این کتابی که من اینجا 272 صفحه می دینم و کتاب امیر کتابی که با قلم ساده قلم شیبا نوشته شده و با موقعیت در عربستان رو که به نام خوزستان بود در اصل در اینجا نوشته در این کتاب تاریخ 500 ساله شون نشه تاریخ 500 ساله به این علت نوشته شده که از زمان شاه اسماعیل اول خوزستان تا اون تاریخ خوزستان بود برگشت شد عربستان حالا خواهم اومد چرا به چه دلیل شد عربستان و در این تاریخ ادامه پیدا کرد تا رسید به امروز زمان رضا شاه حالا این یک کتاب کتاب دیگری هست به نام مشعشعیان این کتاب را هم آن بزرگمرد در همون خوزستان پایه پایه‌هاش یک مطالعاتش و پژوهشش رو بردا تهیه کرده این کتاب مشعشعیان بیشتر مطالبش به این دلیل رفته در داخل مسائل مدارک تا ببینه چگونه نام خوزستان شده عربستان این کتاب کتاب احمد کسرمی است در تاریخ دو هزار و به اصطلاح منتشر شده و کتابیست پروار به بینندگان عزیزم پیشنهاد می که این کتاب رو بخونن از کنگل از کتاب های دیگه که اشاره کردم که فقط به در این چند خلاصه تاریخ خوزستان یکی هم است به نام سرفرسیلورین کاردار سفارت ایران در کاردار سفارت انگلیس در ایران در دوره رزاشاه در دوره خوتایی که در زمان رزاشاه به صلاح کاردار بوده درست همزمان با مطالبی مربوط به شیخ خسال بوده با خوزستان خاطراتشون نمیشته کتابشون نمیشته در این کتاب هم البته کسی باید بخواند که اون دو جل کتاب را هم در کنارش بخواند. این هم یک مسئله است مسئله دیگری هم که منبع دیگه است کتابیست حتما معروف هم. همون میدانیم نویسندش سیروس قنیست ایران بر آمدن رزاخان بر افتادن غاجار و نقش انگلیسا این هم در خوزستان مطالبی نوشته که بنده از این منبع هم استفاده کردم. به هر حال میگذرم به ادامه میدام به تاریخ خوزستان. چرا خوزستان عربستان نامگذاری شده در طول زمان همون که از کردم 500 سال به این ور می مینویسد احتمالا در زمان شاه اسماعیل سفری یا شاه تحماس بخش غربی خوزستان که به دست مششعیان بود عربستان نامیده شد از بخش شرقی که شامل شوشتر و رامهرموز بود و به وسیله گماشتگان سفری اداره می شد جدا کردن بر اینکه اون طرف چون حکومت شیعه بود و حاکم شیعه ایران نمی کنار بکنه قسمت غربی رو دادن به این آقا قسمت شرقی رو خودشون حاکم فرستادن. همین آقای مشرش به اسلاح شیخ محمد خواهم اومد خدمتن. کسی بود که ادعای امام زمانی می کرد پس از اون پسر شیخ محمد هم حتی اول امام زمانی بعد ادعای خدایی کرد. این واقعی امام زمان در دین و مذهب ما مصیبت هایی برای مملکت ما و مردم ما ببکده به بله حال ادامه میدم از بخش شرقی که شامل شوشتر و رام بود و به وسیله گماشتگان صفبیه داره می شود شد یعنی جدا کردند و تا آخر دوره صفبیه و شاید تا زمان نادشاه نظر کسچریه همه خوزستان را عربستان نمی گفتند همه خوزستان رو عربستان نمی گفتند یه منطقهش عربستان بود که ارز کردم یه منطقهش هم خوزستان نامیده می شد اطلاق نام عربستان به همه این سرزمین بعد از زمان نادشاه افشار بوده نظر کسریه احیای نام خوزستان در سال 1302 به دستور رزا خان، این مرد بزرگ تاریخ ما علا تمام اشکالاتی که داشت ولی به ایران خدمت کرده به دستور اون انجام شد همین خوزستان تنها اگر این کار میکرد باز برای ما قابل اترام بود خب برای این که بگیم کی عربستان شده که سرین که در سال بیست شمسی همون که اشاره کردم سید محمد مشعشه که مدعی امام زمان نیکردید با از عراب و اشایر عرب بر خویزه دستیاف و آن منطقه رو از آن تاریخ به نام عربستان معروف کرد کسری در تاریخ 500 ساله خوزستان اشترمشته صفحه 21 همون که اشاره شد نشون, نشون دادم کتاب خدمتون چونان که در گذشته نیز گفتی شد از این نام تا سال 1302 که خوزستان شد به نام عربستان استفاده کرد تمام دنیا به نام عربستان معروف شد رزا خان خدمت بزرگی کرده عربستان که شد خوزستان که ورس فوت به خاک ما دوباره منطقه پربار و زرخیزی بود که به داد ملت ما رسید و حال در زمان ناسد نشاه نگه شلوخ جدیدی در خوزستان قدرت را به دست گرفتن به نام مشایخ محمره که به وسیله شخصی به نام حاج جابر فرزند حاج یوسف بنیان گذاشته شد همین شلوخ به دنبال فتح به وسیله سلطان مراد وقتی فتح اراد فتح شد در زمان 900 انگلستان مخالف بود آقای انگلستان مخالف اون بود که پای دیگران به هندوستان برسه آقای انگلستان ببخشید من با این لحن میگم برای که واقعا گردم کلوفتی میکردن این دو تا کشور روسیگه و انگلیست از ایران خواست که برگرده هرات مال ماست نمیخواست انگلستان چون ایران مخالفت کرد وارد کرد به خلیج فارس و از اونجا هم وارد مملکت شد در این جنگی که اتفاق افتاد همین آقای حاج همین آقای حاج به جای اینکه حاکمه عربستان بود از سوی ایران وجای این که کمک به ایران بکنه به انگلستان کمک کرد از این تاریخ گوز به همراهان نزدیک انگلستان شد بعد بله. بعد در این میان در شهر پاریس در سال مثلا 26 اسفند 1235 یک مجموعی تشکیل شد و ایران و انگلستان سول کردند، پس از سول کردن ایران اجبارا از هراعتم بیرون و انگلیس ها هم از خاک ما رفتند بیرون ولی جای پای خودشون را به جابرخان دادند. از این سو در طول سلطنت چهل ساله ناسدنشا مشکلی در اونجا وجود نداشت آقای جابرخان حاکم اون منطقه بود اسم اون منطقه عربستان بود مالیات های منطقه که مالیات عظیمی بود خواهیم رسید به اینجا که چه درامن کلانی داشته مالیات های اون منطقه بیشتر به وسیله همین سلاطین عربستان جمع‌آوری می و به ایران فرستاده میشد. کسایی می که در این زمان اشای عرب در خوزستان به چند بخش تقسیم شدن و هر بخش شیخ جداگانه داشت از کعبیان گروهی از محمره تا اهواز نشیمن داشتند و شیخ همون که کرد کردم شیخ جابر بود گروه دیگری از کعبیان ساکن فلاحیه بودند و شیخ جداگانه ای داشتند به نام شیخ المشایخ اشایره و اطراف آن نیز در اختیار خاندان مشرشه بودن از هم گفتیم بلتی که در جنگ های ایران انگلیز عرض کردم جا جابرخان کمک به انگلستان کرده بود در سال 1923 اختیار برخی دیگر از اشیره که انگلستان روش قدرت داشت به دست جابرخان سپرده شد قدرتش بیشتر بود من این تاریخ رو میگم مجبورم بگم حضور شما تا روشن بشه که رزاخان چه چیزی رو گرفته برای ممنون ده سال بعد در سال 1266 نو شاه هم رتبهی به این آقادان این رو کرد سرتیب سرتیب ارتش سرتیب نظامی حاجی خان به مدت سی سال در منطقه در منطقه خوزستان حکومت ورانی کرد و در سال 1260 مرد این حاجی به تا فرزند داشت شیخ محمد شیخ مصعل و شیخ خزال دومین فرزند آجابه پس از مردنش قدرت رو در دست گرفت و تمام مزایای پدرش رو هم در اختیار گرفت در زمان او هم همچون پدرش وصول مالیات های کشور در اختیار او بود ولی شیخ غزال برادر کوچکتر که به میخواست قدرتو در دست بگیره برادر بزرگترشو کشت و جاگزین اون شد در این این شیخ خزن به نام برادرکش هم در تاریخ ایران معروف است و جالب است که ست حسن مدرس از چون این شیخی حمایت میکرد گفتم چرا؟ پس از کشتن شیخ خزن شدن شیخ مزن به دست شیخ خزن مزف... مزفردشا کلیه الغاب و نشانهایی که مربوط به مذهل بود و جابرخان بود در اختیار این آقا گذاشت وقتی این به قدرت رسید آقای شیخ خزن نماینده های فرستاد به کنار امین سلطان و نفوذ کرد در... به استدا گروه امین سلطان و اطمان اون را در دست گرفت و این امین السلطان سلطان به هر دلیلی که من نمیدانم نمیتونم بیش از این بگم با خاصل همراهی می کرد به قدرت اون افز او ام و سلطان صدسم خیلی قدرتاند کشور ما بود سپادشااه صدر زمین کرد دربراشون نسط شاه ممسفردی شاه و بعد محمنی شاه و یک چنین آدمی، حومه شیخ خزال شد. این شیخ خزال روز به روز بر قدرتش اضافه می‌شد. در مدت هشت سال تاریخ مشروطیت کشور ما که مملکت آشوب بود، در حقیقت در مدت 8 سال اولین آشوبش از در تاریخ 1908 اتفاق افتاد که مملکت اون باران شد به استدا مجلس شورای ملی تو باران شد قبل از ما در 1907 قراردادی بسته شد بین روسیه و انگلستان کشور ما خودشون به صدا تقسیم کردن بدون که کوچکترین اطلاعی به ما داده باشن رو روسیه در شمال قدرت گرفت و انگلستان در جنوب مملکت ما و همین طوفان مجلس ما نتیجه حمایت روسیه ها حروف ها بود از که به انجام رسید در مدت 8 سال بعد از اون ما میدونیم که تا 1000 خدمت واسه خوام که 1000 92 که مجلس دوباره درش بسته شد به وسیله یفریم خان این شیخ خزال تنها آمونده بود کسی به کارش نمی رسید و قدرت روز روز قدرت می و از زمان جنگ اولی شیخ خزال یک دیناری به کشور ما از این مالیاتی که می‌گرفت نمی‌داد. همش اندخته برای خودش کشور ما که در اون تاریخ در فخر و بدبخت زندگی می‌کرد. و در همین دوره هشت سال بود که خزال سر از اطاعت کشور باور داشت و به اطاعت و نزدیکی انگلیس ها شد در اواخر دوره قاجار برکرانی خزل شامل قدرتش آبادان و محمره و فلاحیه و حویزه و احواز و سرپرستی همه اشایر عرب و ایلهای لر خوزستان بود مالیات همه این مناطق در کنترات همین آقا بود و از این همه مالیات دیناری به دولت ما پرداخته میکرد و جدا سری کرده بود خودش رو مستقل از ایران می دونست کسدی راجبه در این کتاب که کردم کردن بزرگتون راجب قدرت مالی این شیخ اشاره کرده می نویسد که وارث اموال انباشت شده پدرش جابرخان و برادرش مسئل خان بود هرچه زمین های بهرده در خوزستان بود دو سب آن بلکه بیشتر از آن شیخ بوده است مالیات بخش عمده خوزستان که به عهده شیخ بود بایستی سالیانه چه هزار تومان به دولت بپردازد از فروش خرما هزار لیره انگلیس یا بیشتر به دستش میرسید پس مواد غذایی مردم را نیز به کنترات گرفته بود و مبلغ پنگفتی از این آیدش می شود این ها که کسری کس بررسی کرده و من از جانب ایشون در اینجا حضورت رو کنم از کنترات محمده 120 هزار تومان از کنترات آبادان 210 هزار تومان از کنترات گوشت ناصری 15 هزار تومان در سال در آمده که خسن بود خودش خدرت می کرد هم به کشور ما نمی برداخت خب رزاخان رسیده به قدرت نمی‌تونه تحمل کنه که یک چنین چیزی در مملکت ما قرار باشه انجام بشه کاری که باید بکنه لازم است که اون شیخ رو همانند دیگر سرکشان مملکت گردنشو بشکنه بحانه که به دستش اومد در قبل از رزاخان در نخص وزیریه قوان و شخصی از آمریکا به استخدام ایران در اومده بود به نام میلسپو این میلسپو انتخاب شده بود برای اینکه بیاد مالیات ماملکت درست کنه از هر جا که مالیات نمی دادن مالیاتاشونو می گرفت. در زمان مزفردیشات به این دیگه گردن کنفتا پول نمی به ماملکت میر خوردن در آمد فرامون داشتن ولی مامکت هم کرخش نمیکرد این باره به همین دلیل میلسفو دونه دونه به اینا نامش فرستاد از جمله به شیخ خزال شما از جنگ دوم به اینور مالیاتی ندارید با این همه درامنی که دارید مالیات را بده بیاد به دنبال آن شیخ یک درکیری خیلی مفصلی با رزاخان پیشو پرد رزاخان از ور قدرت داره نخوص وزیش شده شیخ خزال از جانب انگلستان قدرت داره تمام ایلات در اختیارشه گردن کلفتی میکنه بالاخره روز 5 نوامبر 1924 رئیس و برای تنبیه خزال آزم خوزستان شد و قاعده خوزستان را به پایان رسانه در خاتمه این بحث برای خدمت شما برای که روشن بشود که چه کسی بر خوزستان ما حکومت میکرد آن مطالبی رو که چکیدهش خیلی کم تاریخ نوشته در مورد وابستگی این آدم به کشور انگلستان حضورتون بازخانی میکنم در سطوری ارز کنم که نامه هایی که شخص علب کنسول احواز نوشته در سختورش در فرازهاش میاد که شرط اول من این است که یک نفر سرباز ایرانی در عربستان نماند ببینید چجوری مجزا کرده چجوری از ایران وحشت داره و چجوری جدا شده از ایران زیرا مادامی که نظامیان ایرانی در اینجا باشند موجب اختشاش و اختلال هستند. گویی کلی کم نیست و حقیقتا وقتی سلطان اونجاست خودش رو مستقیل میدونه نظامیان ایران براش بیگان هستن مزاحمش میشن در جای دیگر از این نامه میخوانیم نوشته که مکرر میگویم تا زنده هستم مساله دولت انگلیس را حفظ میکنم و خدمات من به آن دولت که به آن افتخار دارم برای آنها مخفی و پوشیده نیست در ادالت و حاضر شدن دولت انگلیس برای کمک و مساعدت من همه نو امیدواری دارم و به نخره در آخره چنین نامه چونین چون استقاسهی چونین درخواستی می نویسد من هم به دولت انگلیس متوسط می که کمافی سابق بر طبق مواعید و قرارداد مرا حفظ نمایت بنده قسمت دهم سخنانم رو در اینجا به پایان میرسم میرسونم یه مقدارم بیشتر شد اشکالی نداره ولی بس از جانب من تصور میکنم که لازم بود که گفته میشه بقیه یه مطالب, مطالب خودم رو میذارم به بخش یاسته روزتون بخیر لباس پاس فراغان از شما